الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله راهاله الطيبين الطاهرين المعصومين ورات الدارين فعلى اللهم فهمنا جميع المشاركين الحمد الرحيم يا راهالحمن الرحيم هر شد ك بعد ذلك رمضان الشيخ در مقصد مطرح پر بودن و حسابه هم بردیش رو بسیاردهی و لطیفیه و هر شد که این زیاد زیادی یعنی این پروبون این دیروز عروم شد سابرن در هاچی مرموم شیفت یعفتر کبیه شیفتر کاشوپس ها بر طباه خیلی چاک شده یه خیلی اون در طریقه داره، و یکی هم اون کتاب مرموم شیفت حسن اون هم یکی از آثاریست که تو زهن اون را در این بحث مکاسه بشنیم در اومد شیخ برای اون خیلی نظر داره ارز شد که اون تر اینه که اگر انسان یه معامله محاباتی رو قرار بده از باید مرگون شیخ قدس الله صدر در اینجا باید همین معامله محاباتی رو مطرح کرده، لیکن آقایانی که بعد آمدن اضافه برگون هم محضر شده چون دست راجع به رشوه بوده و این که رشوه حرامه خب این صورتی رو برای رشوه ترخیر کردن یکی این که خود پول آدم داره خب این دست یکی این که پول نداره یکی این معامله بکنه پول کم بکنه یکی این که حدیه بده که گذرشت یکی این که نباشه پول کم بکن در ما. این بحثیت که هر آن به اصطلاح محل کار ماست یکی اینکه اصلا به اصطلاح این هر اران مرحوم استاد محل کردم در این کتاب در اینجا آمده مثلا یک کتابیسی کمیابه ولو قیمتش مثلا هزار محل پیدا نمیشه این به همین قیمت به طرف بده به خاطر اینکه که رشده بشه اگر نرور نمیتون این هم یک نروری از منافع یکی اضافه بر اینها خود منافع ایگزالا سمن مثلا خانه ای که قیمتش این قدره ارزون تر بده یا مجانی بده منافع خونه را به خروب این هم دو یکی یکی از اینها اه... که آیا اینا حکم حرمت داری یا نداره یه این که به جای که پول باشه یا منطعت باشه یا قلط سمن اینجور چیزا باشه مردادی بکنه یک تصیده قراری در وقت قاضی بگیه که قاضی به نفروح حکم کنه آیا این همجز رشه حساب میشی منه یا یک مقالب نیست یا فیلم ورشه یکنی این کاری از این کارهای مساعدت انجام بده که جنبه پولی یا منطعت نداره اما در نظر خورت ایکی از میکنه. اینا فروعید که آقایان در بحت رشه مطرح کردن این فرقی که آن مطرحی دایه محاباتی است از کاری مرم شیخ که احتمالا هست شد شد چون کتاب آن پیش را نبود سه صورت رو مطرح فرموزن و در دو صورتش بخصن که اپنه رشیه دارین پیش را ملحقه به رشیه این سه صورت این طوره. در تحریر این لم من المعامله الا المهابات این صورت اول او خصد المعامله لیکن جعل المهابات، لاجل حکم لن این صورت دو و. و این خصد اصل المعامله و ها بافی ها لجلب قلب الغازی این هم صورت سرون در دو صورت اول رشب قرارش دار در صورت سرون هدیه ملحقه داشته در هر صورت وفتی کرد به فساد معامله، ب... به قرمت معامل وفی فساد معاملت المحابافی ها یه احتمال که این کلمه فساد برگرده به صورت سرون بریده ظالمه برمیگرده که بله به کل. این عبارت فی فساد معاملت المحابافی ها ظاهرا مراد مرمون شیخ حرف صورت نه صورت عشقی ظاهرش اینطور بعد ایشان در حرف صورت بکنه به فساد معامله کردن فرمان فیلوش همه که بکنه به فساد معامله رو از شد این مسئله جده ترکیبی سیدی رو سوریان شده بودش و در ما نحنو که البته خوب دقیقه ما عرض کردیم نیکی از کبرایاتی که در ما نحن فیلمتر میشه این که فرمت معامله ملازمه داره با حساب معامله دیروز این مختلف رو هست عرض کردیم دیروز توضیح هم عرض شد که آدم این بحث رو در اصول در ضمن ملازمات ذکر که کردن سابقا توضیح دارد و حالا دیروز توضیح عرض کردیم از کرده مخلوم ملازمه ملازمه این است که ما دو واقعیت داریم دو چیز داریم دو اعتبار خامنی از واقعیت مراد اون چیزی در پیوه خودشه نه اینکه که واقعیت خارجی مراد اینیت خارجی نیست ما دو واقعیت داریم دو امر واقعی داریم ولی در وعای اعتبار یکی حرمت یکی فساد از شد بریم که حرمت استلاحاً جز احکام موضعید هر حکمی که مشتمل در نهری از یه و جزا و کیپر باشه اصطلاح حکم مولدی است مهیار در مولدیت و حکم اینه اگر انسان اسیان آن حکم رو کرد جزا و کیپر باشه اصطلاح مولدی اینه هر جامعه دنبال کیپر بودیم اسم حکم مولدی است هر جا که کیپر نیز آثار دیگری وردی میشه اسمش می اون رو دلیل رو هم به اصطلاح دلیل ارشادی میگیم پس دامان این یه بحث راجعه یعنی شما ببینید من از کردن در مواقص اصول خود وجود وجوب اعتبارت قادمی در حقیقت اگر کنیم بکنید این حکاس از واقعه این حکاس از واقعه به صورت اعتبارت قادمی داریم مثلا به شخصی مخیلی بگیدیم که این نامه رو ننبید ببینید می خواهی نامه کاری که شما در اینجا می کنید در واقع دست او رو میگید. دست او رو میگید. یا می خواهی در رو باز نکن دست او رو می که در رو باز نکنه اونجا فکر این دست کسی رو گرفتن که کار رو انجام ده این وقتی بیانید شوی اعتبارات قامل تفسیر ببینید اسمشون چون حکم مولدی پس مراد از حکم مولدی در عالم تکیم و در عالم واقع اینجوری بود شما طرف رو دستش رو میگیریم که در رو باز نکن میگی در رو باز نکن دستش رو سوال حالا اگر این دستش در رو در رو باز کرد شما چکار میکنیم؟ میگی در به شخصی در باز نکنیم این نقطه چون مساله اعتباری رو اول تکیم تصور بکنیم ببینید مطالب اعتباری چه رابطه ای با اون تکلیم پیدا می شما به طرف گفتید در را باز نکن سوال اینه شما از این نقدار این... اون, مرازه... اون تکلیمی که بود تعدیش تعدیه چیه به قفل یک، شما دست طرف می که در را باز نکن به جای اینکه که دست این در را باز نکن این درست دو حالا اگر دست از دست شما در رو در باز کرد در رو میبندین یا نه؟ بگه لکه <تصفيق> در رو باز نکن این آمد در رو باز کرد شما یک کار بین دستش میگیریم این اسمش دست گرفتر میشه خوک مولا بیریم دو حالا اگر آمد و خودش دست از دست شما در رو در باز کرد شما چی کار می کنید؟ ولش می کنید؟ یا می نه در رو باز نکن معناش اینه که من می در بسته بمونه در رو دو شما می این اسمش فساده در اصول که میاد یعنی می اگر طرف کاری و انجام داد من اون کار رو معدوم می بینم این اسمش چی که شید؟ فساد فساد اسمش هم می یعنی این سوال اینه که شما در مقابل این در رو باز نکن چه کار میکنید؟ این کار رو که شما در اونجا تکیل انجام میدید این رو بیاییی تفسیر بکنید به اعتبار قانونی اگر فقط دستشو میگیریم میگن فقط حکم مولدی. اگر دستشو میگیریم و قیل از دست کاری خلاف انجام داد اونو رو افتالش میکنید مثلا در رو باز کرد شما میگنید در رو دو مرتبه میبردید یعنی در را باز نکن تو خوابیده این معنا تو در را باز نکن در حقیقت دو تا معناها بیگره یکی این که این چمس نباید انجام بده یکی این که این در باز بسته بمانه ده. این در باز بسته بمانه به حقیقی که اگر در را باز کرد شما دو می میبندیم مثلا در را باز نکن مفهومه ایسایی نبید این نقطه مهم تفسیر قانونی یعنی را که شما در کلی همینطور در مسئله مقدمه واجبه در مسئله فقه امریه مقدمه نهی از بده شما تمام می‌دونید می‌شین با به دهنده تکمیلی کاملا تغییر بکنیم در بحث نحیه در معاملات همین بحث مطرحه من گفتم که ملاحظات اخرها ده این که تلازم و تراوته بین ارتباقامی یک معنای خاص خودشه ترازمینی خواوزه بشن این تلازم تراوته ما عنوان عام تراوته اعتمادات قاملی ترابط هایی با هم دارن ما این ترابطی رو که دارم حیدان میکنن اگر جزئی باشه این با هم مثال دارم در فرسه که غالبا هم هستی که مثال معروف میگن اگر شما گفتن چاه نجست شده با درب با آب بکشیم در آب کشیم چاه پاک شد اطراف چاه هم پاس میشه در هم پاس میشه یا ریزمان هم این درشون لیکن تلازم که مقام دلالت نه تو مقام واقعه میگن چون در واقع این طوره که قاعدتا درون آب نجس خورده ریسمان با آب نجیس خورده گفت آب پاک شده نه روست که اونان اگه نجیس ده بایده که اونان را پاک بکن همون دلیلی که میاده میگه آب پاکه مفهوم دلیلی دریگه این هست که اون هم پاکه اون ریسمان هم پاکه لب شاه هم اگر از اون آب اخت اینا یه نوع تلازم های خوش این اصطلاحا اسم شما میدهیم تلازم های موردی و کارش درکه شده یه تلازم های ترابط های کلی داریم البته دوست بسیار تلازم مثل بحث مقدسی واجب باییم بسیاره تعانوده لازمی تلازم باشه مثل مخصوص زل که توجهات مفصلی روچی حقیقت این دو هست من سابقا هست کردم یعنی در اونجا این بحث این نان خریدن نان تلازم واقعیش این است که انسان بازار داره او عمل جعله وجود بازار رفتن کرده تاانودش هم این است که انسان نخوابه نان بخر نخواب نان مخالعه نکن نان نماز نکن این تاانودشون هم تلازم میشه چون بحث کبرهی بوده این بحث کبرهی تلازم و تو اصول رو بردن بحثی که هست که در ملازمات ما چند تا از کلم مشروع در ملازم متعقیه که الان هست چهار داره اسم بردن که بحث زد در بحث مقدمه هست و بحث شما هم نه و بحث مسئله دلات معامله بر فساد ده در معاملات یا در مطبعات بر فساد این چرا بحث را در تلازم آوردن؟ چون اونا میگه نه دلالت در حرمت میکنه حرمت یک مطلب فساد مطلب یه نیست آیا حرمت در رعایت واسق قانونی در معاملات یا در عباده مدازم با فساد هست یا نه این ترهید که بوده؟ این مرحص محلوم ما از که یه میخوام واده برس بشن که انصاف قدیه به نظر ما تلازم مطرح نیست هر دو مدلول در آن واحد فهمیده میشه تحلیلش هم سابقا از کردیم یه خیلی از خارج شد یعنی وقتی میگه لاس و خلاصه تحلیل این تصلی رو خود دقت بکن این هم دست مصلاط تصلی قلب حری هم دست طرف رو میگیره که نماز نخونه این یک معنا داره یک معناش هم این است که نماز رو بر میگاره میگه نماز نیست لا تصلی نماز نیست اگر گفت نماز نیست اسمش فساد اگر دستش بگیره اسمش حرمته پس این هم البته الله تصلی علی او اون هم بر حشات اون بحث دیگه‌ای ظاهره کلامه اون لاتو سلسلحری به معنای این است که هم دستش گرفته که جانب مولایی پیدا میکنه هم میگه این نماز نیست توضیحش هم سابقاً هست کردیم اجماعه این توضیحش این است که معانی حرفیه پیش ما معانی نسیه اندکاتی هستن اندکاتی یعنی در جهی رو خودشون جلیبه پیدا میکنن تجلی پیدا میکنن خودشون هیچی نیستن نسی این که میگیم سید رو به بچه نشون میگیم کتابه. اونی که باقعیت داره که چی یکی کتابه؟ این رو نصف ما بین طرف این این استلاحاً اندکاتی بشه معانی حرفی معانی اندکاتی هستن. ما دحث اونی اینه که اندکاتی که لا پیدا میکنه لا به حرفی که معنای اعدامه معنی نابودیه لا و نهیه نه عدمه این لا تو دو چیز اندکات پیدا میکنه هم مخاطب هم ماده سلاله لا تو این مونکی در دو چیز میشه هم در مخاطب دست مخاطر مخاطب رو میگیره هم ماده طلاط رو برمیداره داره لذات تلازم رو قائل هستیم قائل اینکه هر دو مغلول با یعنی هر دو هر دو مطلع ازش فهمیده میشه هم حرمت فهمیده میشه هم فساد حرمت به لحاظ جلوگیری از فاعل فساد به لحاظ ماده اعدام ماده لا تسلل خوب دقت این تعریف نقطه اصولی لا تسلل دو کار میکنه در آن واحد نه اینکه یک کار میکنه یکی دیگه ملازم میشه حالا خوبی از این راه میشه یک کار میکنه با اون حرمت حرمت ملازمت با عسا این خلاصه بحث اصولی و در اینجا خوب دقت بکنید در اینجا مشکلشیه، چیه مشکلش که در اینجا اون بحث نحیه در عبادت مطرح نیست در معامله مثلا لفظگاه ایجاویتون چرا؟, چرا؟ چون در اینجا هر زمان اینه که نهی از این معامله نیامده نکته کنیشه قصد کردیم این دیگه بحث اون بحث ملاظره کردیم. اینجا باید با نقطه دیگر رو باید تیب بکنیم چرا؟ چون اون بحث اینه که در جایی مثلا بلا هم کمونه که آباز در اون وارده عقد ازدواج و اون که پدران شما عقد ازدواج برسن شما نبنید. ما بکیم لا تنکبون اینه یک اقدام نکنید. دو اگر اقدام کردیم نکاح باطله. مثلا نکاح نکاح نیست. لا این لا هر دو رو دلالت میکنه. اگر شما آمدید بر زن پدر عقد برسنی اصلا عقد باطله. لا دلالت بر فساد میکنه. نه این که تلاشار فرمات میکنه اصلا اون حرمت هم با یه چیزی معنی بشه حالا جاش اینجاست اما مشکل در منافعی در حقیقت که مثلا اگر نگاه بکنید آیه علی راهوار نشه شاید من اینکه توضیح بیشتری بدم در واقع این سری مشکلی هست دیگه ایران که اینجا نفی از این معامله نداریم اون که اینجا داریم نهی از رشوه من با معامله رو انجام می‌دم در این حال، در اینجا مثلاً من یک منزلی که در میلیون قیمتشه، به این خوازیل میگوشن یک 1 میلیون که به نظر من حیف می‌کنه. خوب بفکر بکنید. تا فقط ها این نکته فنی در اینجا در واقع اینه. اون نکته‌ای که در ما نهفی هست، تینه نهی هست. ولذا ما از کردیم ما یه بحث اصولی داریم که نهی در معاملات یه بحث خیخی داریم خرید و خروش حرام خرید و خروش نجید این بحث خیخیه نه بحث اصولی از کنی در نوع اول مقروشش وقاغنل احلام و هم توضیح دادیم که از زمان شهر مفید و شهر ترزید لا یگوز و بی اون نجید این رفتی وقت نهگر معامله نزده لا یکیم زبایی اول حرام اینجا صحبت اینه که درافت کار برسه داره روشن میشه اینجا بحث نحیه از معامله نیست بستی که هست من معامله انجام میدم طرفه معامله ها. یکی خانه است یکی یک میلیون تومن توش حرام نیست یکیم کنیم نه یک میلیون حرام نه خانه حرام. خدید و فروش حرام هم که یک بحث فرید نیست لیکن با معامله من رشده انجام بدن خود دریع من رشده است، حالا خود دریع رشده چیز دیگه که توضیح هست می کنه. هست در اینجا ما اون بحث اصولی رو که مطرح کردیم در حقیقت باید به اینجا بکشیم. که آیا به خاطر اینی که رشته در ضمن این معامله آمد این منشع میشه که خود معاملن منحیب شهران بشه یا نهارد. لذا اگر به فکر این بحث رو اگر بخوایم دریغا تو اصول پیاده بکنیم تو از اینکه از مسائل خیلی مشکل در طروع ترکیبی قیدا کردن کبریات مثلا. اگر بخواییم برش پیدا بکنیم این به بحث اجتماع و بیشتر شبیه تا به بحث نهی در معامله این از قبیل نماز در زمین مخصوبه از قبیل نماز در لباس مخصوبه بخط گرد اگر بخواین رو تحلیل بکنیم تحلیل و بکنید بکنیم این بیشتر شباهت به نماز در لباس مخصوب داره یعنی که من رفت در بحث اجتماعه نه علت چون اینجا این من در متأثرین مقدار بحث اصولی می کنه ان ناراحت نشن چون ما بحث اصولیه که توضیحاتش روشن بشه در بحث اجتماع نه به نظرت الان که توضیح در می در بحث اجتماع نه راهی که چیه متعلق امر غیر از متعلق نهیه نقطه اساسیه خارج این دو رو با هم گره کرده حالا این بحث اجتماع نه رو ما بسیار با مختلفی طرح کردیم همینش اگر خارج دو تا متعلق رو با هم جمع کرد دفت میکنیم آیا این منشق میشه که خود اطلاقات تقیید بکنم یا نه پس اون منشق شبه در حقیقت اینه یک امره قرآن و داریم یک نهی لا تخصد داریم نه اون ناظره به اینه نه این ناظره به حالا در خارج ما بین قص و صلات رو جمع کرده دقت میکنیم حالا که در خارج جمع کرده این جمع در خارج این چه کار میتونه بکنه می‌تونه بیاد در مقام جمع اصلاح و تقیید بزنه تو مقام جمع نکرده، نخورده سرگو دفرد بکنید تو مقام جمع هر دو اصلاح دارن اقام سالات لا درستن این زرافت های بحث اصولی رو دفرد بکنید توی خارج این مکلق این دو جمع کرده بین نماز و بین قصر حالا مخلوق چیه در مباحث علمی به طور کلی هم چیزی که نوشتم همیشه داده ها رو با مطلوب مقایسه بکنی هاتون اونایی که مخرج به اصول موضوعه اونایی که الان موجوده حساب بکنی اون نقطه مطلوب رو هم حساب بکنی که اون حرکتا نحول مطلوب. اون نقطه مخلوق رو, رو هم مشخص بکنی, بکنی. اینکه الان شما دارید امر عقل الصاد دارید نهی لا در خارج هم این دوتا با هم دیگه یکی شدن یه پرزی در اصول آمده که در خارج با هم یکی نمیشه اون بحثی دیگه نیست اون بحثی دیگه اون بحثی, بحثی صغربی مثلا میگن در مکان قرسی یکی نمیشه اما در لباس قرسی یکی میشه. حالا من باز اون بحث می حالا فرصا من مثال لباس قرسی درزم برای اینکه اون شغره یه مقرر هر در خارج یکی شدن. چیه؟ مخصوب این است که آیا این در خارجی شدن یا تو مقام جرد سلایت بکنه این تو بکنه این تو بکنه این تو مقام جرد خارج خب گفتن بختن بردار در حضرتی در شده ازده نه این دو تا دو اون عنوانه و مقام انتصال در خارج اگر با هم دیگه ارتباطی پیدا کردن و از قضا همون با هم پیدا کردن این به مقام جل نمی رسد ما در حقیقت اگر بخواهیم تشمیح بکنیم ما نحنفی رو شاید تشمیح بتونیم بکنیم به مسئله اجتماع و نه نه نهی در معاملات کبرای اون چرا؟ چون ما, ما یک عمر داریم اقوب اهل اهلالالله به یک نحیم داریم که پیغمبر از رشد نهی فرموندن من با این خود خودم رشه کردم منزلی که در میلیون قیمتش بود به قاضی قرارداد و کیده و به قاضی منظرش هم یه میلیون میدن به شردی که قرارداد هم من بکن کنیم با گفتن جه اصطحاد از بید به میلیون شما من در اینه حال رشه هم دادم پس این رو ما از اجتماع رو نهر قراردیم باشه پس یک نحیه در بازات داریم دو بیعه حرام دارید که این مسئله فقیه سه در همهی بیعه حرام نیست چه سه مسئله چیز داریم، مسئله اجتماع امرو رهدی دارید که حالا حالا از قالب اجتماع بشین و امتناهی امتناهی و اجتماعی که شنید بحثی هم برزید این, این مسئله باز اصولیه چهار یه مسئله دیگه یه آقایی اینجا بر رح که آقا اصلا این بیگ باره اشترا رقصی ندارن نه به اجتماع امونه برمی گرده نه به مسئله نه در عوادت برمی گرده نه به مسئله به یه حرام برمی گرده به هیچ کدو بر نمی گرده این مسئله به قاعده شرطی، شرط کاسد مفتد هسته نه این مسئله مسئله فقیه مسئله اصولی نیست از اینه مسئله شد مسائل این الرجيه تقديم بوله چیزی مانده مثال اصول یا مسائل فقهی قرار داره که اثرشون هم قاعده فقهی چیزی که جنبه کلیت داره اما نتیجه نهایی جزئیه اسمش قاعده فقهی گذاشتن البته معلوم ناینی قد مثلا لا نحسه به ثرای استاد مگوای اصحاب و استاد رو در احترام اسلام شما وجوزه از قواعد فقهی معلوم ناینی قاعده ای دارن تعبیری دارن که اگر حکم مسئله باشه که در حکم برای اصلا محمود یک از ارتباط شرعی باشه برای یک موضوع فی نفسه اسمش مسئله فقیه مثلا خمر حرامه خرم نجسه این را اصطلاحا مسئله فقیه اگر مسئله جوری باشه که کبرا قرار بگیره در قیاسه کنه اخیران هم توی مصباح و رسول آقای آوردن که این مسئله قرد این تحبیر آوردن اونجا هم عرض کردید کنی عب ای بود. کامل بکن. هم از این مسائل روش ایجاد بود توضیح کامل بکنیم شما از ناین نمیشن هم مبنای ناینی نیست. شی اینه که هر ای که کورا کم دقت کنیم با هم خود و بندشون آی کوین کویل نیمونه کورا باز میشه درخیاس استنتخیاسی که از او استنتاج بکنیم قوانین شریعی فریی کلی فری در مورد اصولی عوارضی ها خارج میشود اصولی به عوارض حکم شرقی فرعی کلی این رو اسمش Woahnanهی گوه که مسئله گوستگی هر مسئله ای که قیاس در قیاس و Sandy کبرا واقع باشه. در قیاس استنتاج حکم شرقی فرعی کلی این اسمش مسئله گوستگی هر مسئله ای که قیاس بشه، در قیاس استنتاج حکم شرقی فرعی جزئی، این اخرش قرار بره بده. وجود داشته. باقی بشه در استنتاج حکم شرعیه فرعی جزئی این اسم قاضی این تعریف دو تا با هم دیگه. مثلا اگه که قاعده گذاشتین لا ضرر علی ضرر این قاعده اصولی نیست. چرا؟ شون ما میگیم این وضوی من ضرری نیست ولا ضرر ولا ضرر پس من وضو نگیرم خب مجوز میشه. اساتید خوبم مرحوم نایینی میفرمن اصل در شوابط حکمیه مساله اصولی است. چون میگیم اگر ما مثلا میگیم سابقا این آب متغیر بود نجس بود الان هم زال تغییر منقل قبل نصر هم نجسه. خب برای این و اگر چیزی صادرا بود حالا همون رو نمیگیم این, این آب در خصوص نجسته. میگه کلن هر چیزی حکمی که ثابت بود اون حکم ثابتی میشه مسئله وصولی اما مثلا زید سابقا مالک بود الان هم به خاطر استثاب مالکه این میشه قاعده فرکی لذا مرموم نایینه معتلل مثل استثاب اگر در شبهات حکمی جایی بشه میشه مسئله وصولی در شبهات موضوعی که قبلا جاری میشه، میشه مسئله قاعده فرکی یه استلابی حالا این قاعده شرط هم کلی. بحث و از این مبهد شرط رو توضیحاتش ارز اجمال... چون همیشه اجمالی از موارد در ذهنگوارتون باشه از در درباب شرط دو تفسیر مختلف هست یه تفسیر رائج و مشهور که شرط یه نهره التزام شخصی زنیه زنه یک التزام دیگر یعنی به اقایت دیگر شروط رو به اصطلاحا جز اعتبارات شخصی حساب کردند، ما از کردیم امور اعتباری یا اعتبارات قانونی که کلیه یا اعتبارات شخصی شما اعتبار میکنید اینا رو توضیحات عرض کردیم و قرار هم کردیم اعتبارات شخصی فی نفسه هیچ ارزشی نداره یعنی مکلف یا شهروند اسلامیز ما مکلف و شهروند ما هو مکلف حق نداره اعتبار بکنیم و لذا اصل اولی در کلیه اعتبارات شخصی که میگه اثارتون مسائل در احوامی این هستارتون پساس در احوامی اختصاص رو به خود بدونه خود اعتبارات شخصی از گرم بحث اعتبار این دنیا رو راسه که داری یک احضه یکیش اعتبار میگه من این کارو برای خدا برای خدا قرار تازم این این اعتباره احد و یمین و شرط و عرض اون این اونه همه همه اعتباره داره اعتبار شخصی دابنده بسیقی مثلا دار من دارم زیارت رفتم به دنبال از پدر اون رو اعتبار. ولی عمل مودنا نه به ما حساب میشه. یعنی که من برای دیگری قرار ده نیابه، نماز نماز به اعتباره. مسئله نیابت که اعتباره. مسئله وضو، مثلا نماز ظهر، نماز عصر نخونده که از نماز ظهر خونده بده، بعد اون نخویده. میگن وضو به اندازه ظهر هم اعتبار. اونی که حالا خونده علاقه شده. بخواد وضو بکنه که ماوراء رو تبدیل بکنه به ظهر این اعتباره. هر چیزی که از داره واقع خارج واقع خارجه. و شما در اون تصرفاسته میشه اعتبار کتاب داختی منه سر تومنه. اما شما به طرف نکنیم همجاز من سر تمن تقریدیه همجاز اعتباری می توشیم دو اعتبار من می داختی من سر تمنه شما می شون دو اعتبار من دو اعتبار من, اعتبار من. اعتبار من, اعتبار من. شما یک اعتبار نداره اعتبار سلی واسه اعظم کردی به طور کلی اصل اولی در جمعی اعتبارات فساده این اصل اولیم مثلا میشه نموزدار اصل از زنده خود حالا فرقیم ربایت هم نداشم تر غاله فساده چرا؟ چون نماز از طرف ایش بگیم اعتبار اعتباره بگیم مخییم دکره از ایسی تیگه نور بگیم اون خود اگه اصل اولی در تمام اعتبارات شخصی فساده چرا؟ چون اعتبار لا یست الا به من دید یه اعتبار اونم شارعه مکلف به ماغو مکلف دید یه اعتبار, اعتبار به دست روشت. لذا اعتبارات شخصی تنها یک راه داره امضای شاره اون عقول و غول امضا کرده شاره هر اعتبار شخصی که آمد شاره اعتبار امضا کرد اون اعتبار شخصی راه داره اون بناشون اینه که در اموری که مثلا طرفین ازش تذلیل به میکنن هر اعتبار میشه که انتظامات شخصی اختراها در دنیا حرب تقریب به شخصی شخصیه می از مرادشم شخصی التضامات شخصیه عمود هست نزور هست شروط هست در شرحه التضام شخصی از اون اعتبار طرف این اعتبار به و شرط خوده در تبصیرش عبارت از یک التضام شخصی که در ضمن التضام دیگر است، این درش خوبیه. مثلا کتاب رو شما بروختن صد تان به شرقی برمان یک نامه بینیدید این اسم شر. به شرقی که مثلا فلانچیز رو به من بینید یا فلانچیز رو تنبیش من رو یا به شرقی که از این جا بلند بشه ما خواهد اونجا که به شما بروختن ارزان از این جا بلند شروع پس شروط التزامات شخصی که در ظن ارتضام دیگری واقع میشه اون ارتضام اسمش اسم یک عهود و داری این معنی عهود و یعنی شارع التزامات شخصی شما رو به عنوان عقد امضا کرده بعدم فقول المؤمنون انده شروط این معنی شما التزامات شخصی که به نحوه شرطه به نحوه ذمی نیست شخصی ذمی شما رو هم شاره امضا کرده او این است او علمو الموحدین چه شارع یہ من انجام میکنه البته چند بار من عرض کردم قاعده علم الموحدین شوکه از بسیار مهمه در بزرگان اهل سنت مثل بخاری ها اوردرون حدیث الموحدین قبول نذار بیاد از اهل سنت حدیث الموحدین شوکه قبول دارن خیال کنه انسان میتونه با قاعده علم شروطه مثلا شرط محرم بکنه مطلقاً مثلا شرط بکنه کتاب تا اونجایی که مواسه ای خلال چنین این یکی در روایات ما آمده الا اهل او حرم حلال این در خود متن روایت نبوده این مراد از این روایت همینه هم یعنی به عبارت امر علیه مصرو توضیح دارند که رسول الله وقتی میفرمان به عنوان مغنم و به عنوان مشرر میفرمان المؤمنون اند شروطه مراز اینه یعنی این کلام رو در جمعه تشریف و قانونگزاری تشریفه و به اطلاق لحظیش نگاه نکن وقتی قانونگزاری میگه من شروطه انتظامات شخصی زمنیه شما رو قبول دارم یعنی تا کجا قبول دارم تا جایی که با خود قانون محارفت نکنید و نزار این یک نوع, ش... نوع تغییر عقلی، یک نوع تخصیص سعی عقلی، تغییر سازی هر قانون که میاد یک التزام شخصی رو امضا میکنه، قبلا کرده تا کجا امضا میکنه. مطلقا، او مطلق گرفت مطلقا امضا نمیکنه. امضاش که میکنه، تا جایی که پرس قانون نمیگیره؟ وقتی بذب قانون تعطیل کرد یه امضا میکنه. اون در جعبه قانونی اصلا مناسب نیست. او فوبل اوحب معنی چی که چیز حرامه حرم علیكم میگه با گویا اووبل غوبز گارت شما خدمت میکنه خیری اووبل وجود اونجا رو میگیره یعنی اونجا نمیگیره اصولاً و لذا لا یمین فی قطعی اتره لا یمین فی معصیه الله درست قسم شاره قسم رو ایجاد کرده نزور رو ایجاد کرده لكن فن نزول قاعده اسلام بوده اصلا قبل صدور یعنی قبل از اسلام سا هزاران سال قبل از اسلام نزول و که ها در زندگی بشر وجود داشته. شاره رو هم انزا کرده. لكن کی معتقی الله نه. اصلا معنا نداره که شاره بیاد کاری رو که خلاف قانونه با یک التزام شخصی درست بکنه. اصلا معقول نیست. این معناش اینه که قانون کل از بین بره. شاید بیاد التزام شخصی رو تا این حد نافذ بدونه. اگر دام بشه التزام شخصی تا این حد نافذ بشه، خب اونجا با التزامات شخصی تمام قوانین بردارد. اونم لازم هست اونم شده دقیق این فیما واقعا که الله الا شرطا نحن این تعابیر مختلف اشاره به این نقطه هست. و اون نقطه رو به زبان انگلیسی براتون خالیه انتظامات شخصی معین نه هر التضام شخصی انتظامات شخصی مادی اشاره اجزا کرده لكن شرط اساس این است که با انتظامات شخصی با قانون نافی نکنه اصل از التزام از شخصی نمیتونه با ايفاق قانونی در بیوقته در مرحله تحت قانونه نمی تونه مسند لا میشه و این نگار رو به حال نمی اما تگره مصادر قانونی ندارنا مدعانو علی میفرميان که امر قادر به میشه من صلحا عمل کردم از عمل اول نعبد شده در کتاب نصب ورای نرم کرده در از دوره حنابلی خیلی اخر نسبت داده میشه مصدر نقر رو میرسه دقیقا که احمد نحنبل گفت این حدیث رو پرد اونه که خطا درست نیست چون بخلی خطایی ما داریم که تو تو کش را بگرد این کلامی از احمد نحنبل صادر شده باشه که این کلام ضعیفه چون همینکه که مرحوم شیخ خرمدن شیخ نحن اصلا حدیث برد نه احکامی که توش کلمه امزن هست برمیداره چون اگر امزن بر من افتار پیش هرموزوان متعام میدن این ما اگه تعمل در حدیث نه اون احکامی که تو لسان خطا آمده یا اون احکامی که در لسان داریش نسیان آمده در رواید داره که اگر شما میمیدونیسی در لباس نجاست هرس نماس خونی درسته اما اگر میدونیسی نجاست هرس و حراموش کردی و نماس خونی باطل معیده به نسیانه اگر نسیانه نجات در کردی اما توی آرور پس حفظ اممتی انسیان این حکم رو بر نمیداره این حکمش موضوع همینه. این یک خمه لطیفی از قانوم که... یعنی این مسئله که احمد بن زهندن گفته که حدیث رفت با آیه ممن قطع مومن خزن ممن یک تا مومن خزن از این تو مهم نمیخوره حکمی که مقیده به حقام میشه با حدیث رفت بر رس حکمی که مغیل موضوعش به نسیانه که موضوعش مغیل به استقرابه اصلا اون حق حدیث رفت برگوشی نمیشونه حدیث کارو بکنه چون تو لسان نشون اون آمده دقیقا درمونی پس بنابراین التزامات شخصی هم یک گاهره محدودی داره یک تا اینجا پس شرط عبارت از التزام از زمن التزام الان یاد تحریر رده التزام ش در مقابل عهد که التزام شخصی است در مقابل نذر زمنی لله علیه اون زمینی زمنی در مقابل اهل در مقابل یمین اینا التزامات زمنی نیستن شرط التزام زمنی رأی دوم اینی که نه شرط مطلبه التزام میونه ولذا المؤمنون اند شروطی شامل عهد هم میشه شامل نظر هم میشه مند عقدم میشه شرط به معنای عقد مطلق عقد این مبناه محوم سید یعنی ها شیف مقاصل انشاءالله میرسیم دو بحث اوال فکر ایشون اشیار برمیدن و که انصافت ارتکاض و عرفی با این قیلی مساعد است اون وقتی این بحث پیش میاد که در باب شرط ما چه کار میکنیم در باب شرط محصولا که عدوات حرفی رو بزن علا علا انخف علکبا در واقعاً ما یه یک نوع کاری که انجام میدیم یه التزام درس میکنیم که امر است اون انتظام که چون میخوایم در مقام التزام باید ایجاد رابطه بکنیم امر اعتباری ایجاده انتزامی ایجاد, است. ایجاد است. این ایجاد رو یک حالت بوستانی برایش پیدا میکنه یعنی به قول تبدیل خودبنگه قضیه سلاتی و س... رو تبدیل به قضیه سلاتی میکنه مثلا وجهه که ای بگه این کتاب رو فروختم به سر تومن این اسم جزیم سنانی چون انتقاض نقل کتاب در مقابل سر تومن میگه کتاب رو فروختم به سر تومن اگر برای من در سراتی که شرط که برای من نامیل نیست اون قضیه اصطلاحی اصطلاح ها را در حالت اصطلاح ها آزم نیست به قضیه اصطلاحی یعنی یک نوع تعلیق تو کار میاد اگر و به شرحی می شه. این با یک نوع انتظام این معنی این انتظام چیه؟ معنی این انتظام معنی این انتظام اینه که من کتاب رو دست می خوشم در زمین انتظام که ناره حالا اگر نامنوش نامنوش چپار میکنه؟ این مقدار چپار میکنه؟ این شاید این توضیحاتشو قادر شروع آقایدشو تا مرانشه تو مقاطع آخر تیارد دارد ولی تو اونجا در از این خدا توفیقی بده اونجا هم ساید کرد مثلا ادهه از تو گفتن این مقدار المؤمنون اندشوته شهر فون حقیقت المؤمنون اندشوته فقط خب تکلیفی در میاده این دن به معنی وجود و دو با از بحث است شما چه الفاظی داریم در لغت عربی برای وجود یک کم از معانی انده المؤمن انده شرطه یعنی یعنی باید شرط تجاوز نکنید یعنی شما تجاوز نکنید یعنی واجبه این اصطلاح وجود گفته شده که نه قاعده المؤمن انده چون که اقتضاء شرب حکم لایضی کلا می‌ه و قول دیگر اینکه شاید مشروط تر باشه هم حکم ورضی داره هم حکم تکلیفی تکلیفی یعنی باید انجام بدی واجب چرا گفتی من این کار اینا باید انجام بود یه روایت داره که ذهن یه شرط می‌کنه که ازدواج نکنه ده خلیه خلاها بشه از این موارد هم داره حالا من فعلا فقط بگوخ. امام خلیه ده این خلیه ده ها تو تکلیفیه پس یه از المومنون علم شروط هم در میاد که حکم تکلیفی یعنی باشه چون اگر انجام نداد اندش نمیدیم اند؟ یک مفهوم اندکاتی یعنی پیش اون شرطش بمانه اصلا میگه تو مقابل کتاب بمون. اگه آمد این وقتی مقابل کتاب نیست این از الفاظیست که در لغت عرض اثبات وجود میکنه. کنه اند این هم دو نقصی اساسی خود التزام طبیعتش میگه من ندستم کتاب رو مصلقا به شما پروستم اینجا این اعتبار مصلقا نکردم نقل کتاب رو نکردم، نگردم نقل کتاب رو کردم با این شن پس این نقد واسطه برد این نرل خلاصی کرد و خلاصش این شد اگر ورقه در من نوشتی این نرل هست حالا اگر ننوشت به این که موجب فساد میشی اصل واسه برد لیکن آمدن جمع بین جهاد کردن نتیجه این شده که اختیار تویید میکنه نه فساد یعنی به عبارت دیگر ایجاد یک حق میکنه یک حق اسم اون حق یاد حالا خود حق حقیقت اون بحث دیگری اون حق اینه شما حق دارید اون التزام اول رو فرض میکنید از شما وقتی تحلیل ها خیلی اثر داره یعنی این شما الان باید یه چند نکته رو دقیق بکنید وقتی این آمدین از اول اولی شما رو قید زد نتیجه خیلی چیه این بحثی که منم بحث میکنم این بحثی که کردم در دانشجو در مباحث فقه در کل دنیا مطرح هستن کی این ما چه کار میتونیم بکنیم یک این فقط تکلیف میاره هیچ دیگه نمیاره اگر به شرطش عمل نکنه شما به یه درستش مشکل دو اینکه اضافه بر تکیف مثلا فساد میاره سه تکلیف میاره ولیکن فساد هم نمیاره چرا؟ چون اولی خودش عقل بود جمع بین این تا؟ یعنی بین اینکه که عقل واقع شده اعتبار شده دیگه گفته کتاب کروخت و جمع بین اینکه که ای رو معلق کرد جمع بین این مولد یک نوع حقه اون حق اسمش چی خیاره؟ نتیجهش اینه که شما سلطه داریم بر فسق معامله <تصفيق> نه اینکه معامله فسق بشه باطل بشه نه اینکه که اون معامله لازم باشه هیچ تاثیر نکنه یک <تصفيق> درجه متوسط که ما بین هر دارو ما مراهات بکنیم هم اوفو بل اوبود مراهات بشه چون هم انتظام بود دیگه هم اون انتظام مراهات بشه هم از طرف دیگه این انتظام زنی حقش شده بشه چون پایین انتظام زنی اون حالت مستقیم رو برداشت اون اعتبار مستقیم رو برداشت واسطه بگیش بزن و لذا از قاعدی علمان از هم موجوب تکلیفی در میاد هم خیار در میاد و الله عرب محمد محاله <تصفيق>